بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه الله على سيدنا رسول الله وعلى طيبين واطاب الناس من الناس انفع على هذا المجلس اللهم اغفر لنا جميعا المشغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم ارحم الناس فباسم الله لك رافع الكتاب مسباح اصول المرحوم الاستاذ قرار زاده برای سیر بحث در این کتاب مثواد انشافی که شده صفحه 84 و چهار المقام که بحث علم اجمالی سقوط تحقیق به علم اجمالی یعنی به انتصال اجمالی به علم اجمالی شده که تعدیر درستی نداشت را که به اولین که بارد این بحث بشیم و از این نقطه ای به وحث هایی گذشته بود می که خیلی واضح نشده باشه اشتیار و توضیح مختصر رو و عرض بکنم ارز که از به این از موارد هست که حاکم حکم میکنه یا به اقرار یا غیر زاله حالو و می در مقام جمع مثلا این خلاف رو واقعه مثلا این مثالی که ذه اقرار بکنه کتاب مال هم بر برد مال بخت میگن کتاب رو به یکی بده برد دیگری بده. همین مثالی که ادهی از موارد شیخ برموندن که اگر انسان جامعه دینه هر دو بکنه علم تقصیلی به مخالفت پیدا بشه من چون که مختصر متعرض شدم حالا هم یک توضیح روشندتری رو عرض بکنم که حالا این مثال هایی که مرمون شیخ دادن کلیه شد در شعبات موضوعیه در شواهد موضوعیه نیستم چیزی ما در شعبات موضوعیه در و نکته اساسی که محلش خوبه و اشتال آقایان شده خوب دقت با کنی این آقایان حکم خاکم رو به منزله یه قطبای فقید گرفته, به گرفته. یا به منزله یه اماره گرفتن خوبه حکم یا فوقش حکم حاکم رو در رفع خصومت فقط خصومت برداشته بشین ولی ازا این شبه پیش میاد که اگه کسی جمع از اینه هنگو کرد مثلا علم تفسیری به خلاف بده اما احتمال قویه هست که حکمه ها که حکمه قاضی مجرد رفت خصومت نباشه اماره نباشه اصلا قاضی بیان قانونه اگر قاضی گفت این میگه این آغاز اینه قانون گفته نسبون آواز نه اینکه این مثل پتواهی باشه مجرد رفت خصومت نباشه نقطه رو درست برمودیم اصلا بگیم قاضی به منزله قانون خود قانون. وقتی دو نفر اختلاف در هوا پیدا میکنن قاضی میگه این عوام مال این شخصه این در حقیقت این نیست که با مثلا اماره ای بلره که عوام شخصه، نه مثلا قانون میگه عوام باشه شخته دستور میگه فعال اینا اینا مشکل پیدا میدن خب اگه من که حاکم و دو عبا مال من منم می با من دروغ گفتن عوام مثلا یا خب تو اگر واقعا با قانون باشه چرا نسبت به خودت نمیکنی ترتیب اگر واقعاً قانون باشه این جوابش اینه که ممکنه این مشکل نداره که ممکن است یک نوع قانونی در حق دیگران باشه در حق خود شخص بلکه بالاتر در حق عالم دیگه این قانون نافذ نباشه یعنی این خاصیتش خاصیت خسلت امارته اینو حتما کلا امارته درست این خاصیتش خاصیت اماره خود بگرام من میگم عوامال من خودم میشم تجربه کنم رفیق وقتی من که منن میدونه که عوام مال من نیست اون از این طرفه اونو هاشم میکنه اونم میدونه چه تصرافی میکنه و این ادله تسرب از دلیل نادر و حکم هاشم نیست از دفعه این تصویرش رو خیلی مشکله که مثلا یک چیزی به لحاظ بعدی از آثار حکم اماره رو داره به لحاظ بعدی از آثار حکم خودی اعتبار قانونی داره اما به هر حال اونی که در دفتر کازو اوغلا هست یعنی وقتی دادگستری و قاضی حکم کرد دیگران با او معامله قانونی میکنند. از سردن این معامله قانونی چون به هر حال قاضیز و خصومتی به دو طرف بوده این محدود است به عدم علم بخلاف این عدم علم بخلاف این رو اماره قرار نمیده این خسلت اماره نداره این که فوقهای ما رو مشکل دورو کرده اینه کیفیت جمع بین این دو خسلت از یک طرف خسلت اماره داره از یک طرف قانون خودش قانونه. وقتی قاضی بخش این مادش رو کنم و شارع بکنه و رضا شاید هم در اون رواز داره که فیضا حکمه به حکمه فر راد دو علیفی حکمه راد دو علینا و راد دو علینا تر راد دو تو رواز ها باید داره این تر راد دو علینا لکه وقتی ایشان حکم کرد این به منزله قانون میشه لکن از دیگه هم پهنمبر حکم فرمود این ما همه بشه همه احکام بیانو کن, کن بالایمان والبیانات وشی فیلاغت اطلاعهد کنشی ام ولن یکن لفت که انما مثلا یه قطعه از آتشه اگر واقعا میگونه که اینچور نیست او به حکم من حکم نکنه واقع رو بگه اون واقع محفوظه چون میگه من بر اصلا زاری رو زاریم بیانو رو به بیانو حکم میکنم یکی سی قسم خورده به قسم رو حکم میکنم می جریان این دو نوکه‌ی مشکل در باب قضاوت درسته اصل مشکل مال باب قضاوت که ما چیکار میکنیم با ایده اینه که ظاهر قضاوت به اماره گیرسه خب اگه اماره گرسه باشه علم به خلافش متولد بشه درست نیست در اونجا کوچیت ند. اما ظاهر نظر ما ارتکاز و عقلایی قاضی شأنش مجرد اماریت نیست مجرد فاقل خصومت نیست بلکه خود قانون البته جمع بین این دو تا چون مقام اعتباره مشکل نداره. برای کسی که واقع میدونه تا واقع باشه. برای افراد دیگه تا ککنات باشه. خود کانون باشه. این مشکلی نداره. این راجعه به این قسمت. راجعه به قسمت دوبون بقولیشان مقام ثانی و بحثی که اصولیم دارید به فرمانیم. بقولیشان علم اجمالی در مقام سقوط تحریف. الویین <تصال> شانده هم جای علم اجمالی بود علم نیست علم اجمالی اصطلاحی نیست بسیار یه نکته داره اون علم اجمالی صادق نکته دیگر اینجا مراقبشون امتزاع اجمالیه مراقب از امتزاع اجمالی یعنی انسان یه نرمه امتزاع دو تا سه همه انجام داده که بدون یکیش مطابق واقع امتزاع واقعی پیشش امتزاع اجمالیه امتزاع اجمالی واقعیه مثال میدونه که از این دو اینا، دیگه ای از این دو لباس حتیل پاکه در هر دو نماز خونه خب قلب شده میکن تو لباس دو دو تا مشهور هستن فرس به نظرشون بقولون آن که تقضی علم لازمه. یکی علم نمیدون تشکیص بود از هر دو جمع بین هر دو قول اگر از جمع بین هر دو کرد این یقین یعنی داره که به عالم واقعی عمل کرد این یعنی امتصال, پس ما ای امتصال داریم. حالا تعبیر دیاره علم اجمالی تو مقام امتصال تو سقوط تکلیق بگی لازم نیست علم تفصیلی هم میشه من که علم تفصیلی دارم که این منزلی چه کنم علم نه میخوام بگم علم تفصیلی هم میشه که من علم تفصیلی داشته باشم و معذاله به امتصال اجمالی رو بیانم می شما روشن هم کنیم لباس ندیسته تو هر بناسه این امتصال اجمالی نمیخواد بخواد امتصال اجمالی در مورد علم اجمالی باشه امتصال اجمالی خودش عالم دیگری خوب دقیقه چه؟ کشم من ازال بودشم پس شرح هم به روشن میکنه تشتیف سیدم این لباس ندیسته خب همین با تبکن از امتصال تشتیری ما یک مهیا امتصال اجمالی داریم به هر حال. اما بحث که امتزاضل اجمالی منشأ علم اجمالی به اجمالی مقام تفصیلی اصلا بحث سال اجمالی تیجید. در انتصال تفصیلی اگر ما باور شدیم که علم اجمالی خودش منرجزه خب با انتسابش اجمالی بش یا نماز دور واجیرا نماز جمعه خب با دردی رفتم که بحث بره که بحثش علی انتساب اجمالی و این البته بنظر ما نیاز حالا البته که ایشون براتون شبهه شد بنظر ما نیاز چی کلمات اثرونا اینجا یک مقداری خیلی واضح نیست نه الان به هر حال ما چون چه رواد مقدمانا شده روی حساب‌ها رو خوبی بکنید این مقدار مطالب رو الان عرض میکنن بعد توضیحات او عبارت که کم بشه هم دادی این که عبارت بحث بشیم مرمون نایینی هم در اینجا آهد بگی کنیم مقدماتی فهموندن ما حقیقا شبیه مرمون نایینی مقدمات عرض میکنیم تا معلوم بشه چه نکاتی که این مقدمات بعدش به اینکه سال یه تجمالی بعد بعدش نفتی دیگریه جا همه جای مقدمه اول در باره همین تعبیر تص... ت... امتصال اجمالی که مراد با از امتصال اجمالی چیه و اخسامش چی؟ امتصال از مقام سقوط تکیفه بنابر مشهور و درستم هست و مقام امتصال اصولاً مقامی که انسان سعی می کنه. عمل رو مطابق با معمول به یا به قول وعزی ها امتباق اراده آمری با اراده فاعلی با اراده آمری فایل من همان هم شاهد من باید اراده من طبق اراده آمل باشه این تطریق اراده فاقی با آده رو میگن اطاعت قبول کردن نبکنه انجام نده روشنه اصیام این اصطلاح هم نید امتصال ممکنه تحصیلی باشه گایی ممکنه تشمالی باشه امتصال تحصیلی بوده عمل و انجام بوده که قطعا همین به اصطلاح مقام سبوت تکریف هست که مقام امتصال از سحان اراده او در دین عمل با اراده آمر یکیه این امتصال تفسیر امتصال اجمالی دو عمل سه عمل بیش از یک عمل انجام میده میدونه من حیث المجموع با اراده آمر یکیه اما کلو بابل تشریف نبینه هم اینجا همی شالله عرض خواهی کرد دوتایی که انجام میده یکیش قبیه تر دیگریه مثلا نماز زهر جمعه که بخواد بخونه اگر داری سآل بخونه بگه احتمال هفتا درصد شهست درصد نماز زهر باشه، سی درصد یا چههل درصد نماز جمعه هست در اینجام باز ایک بخشی دیگری چه چلا بعد ارزم کنم ادهی فرموزم اونی که احتمالش قبیه اول او رو انجام بده بعد اون دیگری از گفتن پاهم نمی کنه از گفتن اول هفت سات انجام می بعد سی درست دیر از دمیگر نا آزم اولم سی درست دیر انجام ما این مجاری بحث برسون منطق باشیم بحث دیگر این یک نحوه تقسیم انتصال یه نحوه دیگه تقسیم امتصال یا ارمیز یا زمیز و یا احتمالی این هم یه تقسیم دیگر نیست علمش واضحه یعنی حدود و اون عمل مشخص دلیلی که براش آمده روشن واضحه ثبوتش واضحه و علم داره بینید که انتصال با این واقع میشه مثلا یقین داریم این لباس پاکه داره با این لباس نماز میکنه زنی هم به دو شور تخصیل میشه یک یعنی زن خاص مثلا بیانه آمده گفت این لباس پاکه یا زن مطلب بنابرای این که زن مطلب در مقابل زن خاص آخر عبارات آیون هم در جا مختلفه زن مطلق نه اگه زن خاص نبود بگیر زن مطلع بردی نه زن مطلق و زن خاص یکیه وقتی این نبود لفتن زن یکیه اما از بیانه باشه یا مطلق زن باشه همه زن خاصه این خلال بحث اشاره بشه که در این بحث ها معطل کردن که اینو تیرپنی که زنن این که سال زنی بیشتر مراد ما در اینجا الان ابتدای اون زن مطلقه بنویسید اون زن خاص مثلا فرضش بگیم بیان شده که این لباس لباس فاقد من تو اون لباس لازم این یعنی میگیم که تصلی زنی یا فرض حاکم یا فرض مشهد صحیح اجماع مشاور تصاد نماز جمعه بخوام خب من نماز جمعه بخونم یا فرض را در زمان غیبت هم نماز زور باشه من نماز زور بخونم و مثلا ده درصد بیس درصد احتمال اطلاف میدم لیکن معزالک این زن معتلانه این بشه این احتمال زنی احتمالی هم که و از تقسیم اینها چهار تا آنها در میاد که با این احتمالی پنج شده علمی اجمالی علمی تفسیری زنی اجمالی زنی تفسیری این چهار تا یکی امتصال احتمالی این پنجشه ما پر نهر امتصال داریم علمی اجمالی و علمی تصدیری دوتا زنی اجمالی و دو تا این چاست و امتصال احتمالی احتمال بدیم اصلا میگونیم نماز جمعه یا نماز روح باشید ما یکیش انجام بدیم احتمال... یه احتمال داره مطالقه با لاغه باشه یقین نداره برماشون فعلا در اینجا اینه که امتصال احتمالی اگر هم لازم باشه این مرتبش آخره اون انتصال احتمالی درست نیست. اگر جایی هم بود با فردان اون چار هست این تا اینجا روشن برگذیم به این چار تا بحث رو عرض رو یه بحث اینه با انتصال علمی دائما نوبت امتصال زنی نمیرسه که باعث دائما تفسیری یه بحث این است که با امتصال تفسیری با امتصال اجمالی نمی‌رسه چه علمی چه ظنی یه بحث دیگه اینه یه یعنی نظر یه بحث که اینها رو درجه بندی بکنه مثلا بگیم اول امتصال علمی تفسیری بعد از او امتصال زنی تفصیلی بعد از او امتصال علمی اجمالی بعد از او امتصال زنی اجمالی اینجوری تفصیل برگیرون مثلا اگر من امکان داره که ببینم لباس ندیس تو داریم این انتصال علمی تفصیل حالا اگر این امکان نداشت او دقل بکنیم برم سوال بکنم از برادرم از دخترم، پسرم، زنم پدرم، کسی که خونوزم با بکنم لباس پاکیم گرمی یکی پاکیم من اگر تفصیلن نشناسم بسیار تو دو تا نماز میگم نه، تو دو تا نماز نکنم اول زنی تفصیلی سوال بکنم مشخص کرده این ایتیه. تو اون اگر اون هم ممکن نشد اگر ممکن نشد اون همه علمی اجمالی تو دو تا که میدونن که یقینا تو اون دو تا یکیش فاس اگر اون هم ممکن نشد ظنی تفصیلی اجمالی بردازم زنی اجمالی یعنی مثلا بگوید یک بگوید یک این ناجسته یک بگوید اون ناجسته دو نفر گفتن که من تو هر دو نماز بکنم این میشه ظنی تفصیلی فاس کشه میشه ظنی اجمالی این وجهی از باشه چون چهار مرتد پس بحثی که الان در اینجا هست این دستبندی این همه تردیب به اصطلاح به قلاح و عرضی بودن این امتصال ها آیا اینها در طول همه یا در عرض در طول همین مثالی که به شما زدن در عرض میگه نه شما هر کدوم منجا بود شما عرض داری میتونیم در هر دو با اینکه علمم داری در هر دو نمسو میتوني چراغ روشن بکني ببین کدوم که نهدیسه خوب خیلی واضحه می میون در هر دو نمزو این علم پیدا بکني میتوني به بینهم مراجعه کن بینه بندس باان میتون علم پیدا کن نمیخوا علم پیدا کن به بینه ش رون ش بح درسره بحث سر انه که بکنید. بکنید. چی؟ این چهار, این چهار مرتبه امتصال اینا آیا توبین سم اون مثال که خبتن اول او بعد اون این اول و آخر یا اینا درمه در عرضین شما امتصال علمی تفسیری دارین علمی اجمالی ها می که انجام مثال بارستر این که خیلی مقتلات یه تو همه رساله به عملیه داره امتصال زمی تفسیری داره امتصال زمی تفسیری درمان احنافی در, در شبهات و حکره اشتهاد یا تقلید می تونه اشتهاد بکنه مشتهده میتونه تو مثلا نظر بکنه مشهر نیست میتونه یک فقیه جامانشایت هست تبریل بکنه میگه نه آقا من نه خودم نگاه میکنم نه تبریل احجیات میکنن جمع میکنم. ببین امتصال زنیه تفصیلی هست اما امتصال زنیه تفصیلی رو بین میکنه یا زنیه اجمالی بین سه تا مشهد تبریل میکنه سه تا فقیه با اینکه میتونه فقیه به فقیه جامانشا اصلا قالب تقلیل علم رو میشون تشریف طول پقیه علم رو لیکن میگرد اصلا نفر تقلیل می کنن یا علمی اجمالی از مجموعه کقاهای تقلیل رو مره که یقینا نیکیش متاظره با واقعه و هم این مسئله از بقیه مسئله بوده معروف شیخ انصاری قدس قبل الله نفسه عبارت سال قوامی میاد از این عبارت تا قبل شیخ شیخی معروف بود ادعای اجماع شده کسی که میتواند مشهد باشه اشتهاد بکنه یا تقریب اگر بخواد احتیاط بکنه عملش بشه باطله. این از زمان شیخ حوض شده این طور عملیه حالیه مکلب سفاست یا مشهد یا مغلب یا محتاج نیستن برای مردم پس اون بحثش ایجاز الان اون بحث رساله عملیه اینجا قبل از شیخ از کنه ادعای اجماع، شیخ هم میگه لده اول اجما علا بطلان عبادت تارک تاریخ اشتهاد یعنی در تقریبی عبادت دوبی مرادش اینه عبادت کسی که تارک تاریخ اشتهاد و تقریبی باطله یعنی چی تارک یعنی عمل بهتیان کسی بخواهد عمل به احتیاط بکنه با تمکنه از شهاد یا تمکنه از ترلیل عملش واقعه این اصطلاحش اینجاست این بحثش اینجاست اون اصطلاحش اینه آیا انتصال علمی اجمالی یا زنمی اجمالی علمی اجمالی اگر به مجموعه احتمالات عمل بکنه زنمی اجمالی یعنی به چند تا از خواه ها ببینید دو تا سه تا ممکن است برده. گفتم مثلا دو سال فرقیه یکیش پاسه و عادل میتونم پیدا بکنه عادل کدو نه به هر دا عمل میکنه. احتیاط میکنه به فرقیه هر دا عمل میکنه. سؤال. این درسته؟ احتیاط میکنه به فرقیه. دو فرقیه که میدونه یکیش واجده شده یکیش واجد نیست. راه هم داره برای تشکیه واجد. بالاخره فرقیه فرقیه زرمیه. زمیه تفصیلی هم داره میتونه میدونه خودش هم میدونه میتونه می مراجعه کنه ده نفر بی سفر شهادت که این یکی فاسده یا که میگه من دیگه اینهای سوال نمی کنم از هر دو احتیاط میکنم به این دو احتیاط میکنم به نظر من بیگه به بی این نه مرگم و استاد هم نداره به این وضوحی که من هم شدمتون کردم. این اصل مسئله ما در درجات امتصال درجه بندی داریم یا نه اصلا تو این مسئله ما هیچ بحثی نداریم هر مهمی که شد با این که تمرکز از علمی تفصیلی داره علمی اجمالی هم کافیه با این که تمرکز از علمی تفصیلی داره زنی تفصیلی هم کافیه میتونه تشکیل شده که لباس دقیقا لباس نجس راحت میشه تشکیل شده اما تشکیل نمیده شکقدر برادران و پولسر گیان کیه خطاب به این ذهنیه تفصیلیه آیا با توکل از علمیه تفصیلی دقیقاً ما بحثه با تنکل از علمیه تفصیلی میشه به ذهنیه تفصیلی مراجعه کنه قضیه بحث این اون بحث اح... یعنی یک بحث زاویه کلی بود مثلا گفتن کلن انتصال زنی بعد از علمیه اول علمی بعد از علمیه. هر جور بخواد باشه همیشه انتصال زنی بعد از علمی باشه یک بعد یه بحث میگن نه آقا همیشه اجمالی بعد تفصیلی هر جور کشمای امتصال اجمالی داریم. اول تفصیلی ممکن نشد اجمالی این دو بحث یه بخشی که میگرد یه نه این داره ترخیق اینطور این تو کلی صحبت میکنه. علمی اجمالی رو حساب میکنیم زنی تفصیل رو حساب میکنیم مثلا اول علمی تفصیلی دوم زنی تفصیلی سوم علمی اجمالی چارم علمی, تفصیل. علمی تفصیلی به اصلا چارم زنی اجمالی این طوری باید تخصیل بندی بکنیم و شاشه ان شاء الله میکنم مطلب شده من با برای جا با در توضیح دادن بازم عرض این تقسیم بندی تو ذهن مراجعشون بودا من نمی‌دونم محضر اینجوری نوشته من و در باعث که مقام سانی فلان در جهت اولا بحث کفایت الامتصال الاجمالی به اون جهت ان کفایت پایت اجمالی مهتمک کن المکلب من الانتصال تفصیلی. اجمالی و تفسیری جهت اولا با عدم تمش کن جرد با تمش این مسئله علمی و زنیش رو مسترح نفرمیدن لیکن که آخرای دست که میرسن آه این سطحه ۸۴ که این در صفحه 93 یه رها فرض تمکن من الاتصال تفصیلی علمی و اما اذا لم يتمکن من و دار و تفصیلی مرادش کلمه احتیاط حاجتتون ببینید علی علمی اجمالی و راجع به علمی اجمال تا چه زن یا زن معتبر یا غیر معتبر در اونجا وارد شده یه مقدار هر حس اسم آدم طرح مسئله روشن نمی‌مده تو عبارت روشن شد طرح مسئله ای که ما عرض کردیم روشن‌تر شد ایشون اکتسال کپس اجمالی رو با تفصیل گرفتن با تمکن و با عدم تکرار مثلا روشن شد که نه این مسئله مقداری زوایای دیگه هم داره یک مقدار واضح این یک مسئله. مسئله دوم که دیگری مسئله ای که دو باید بیشی، چون من همیشه ازش میکنم، اون گفت بقول قلای اون مبادیه سازی توی این مسئله بحث اساسی با قلای ولد دهش و به نظر ما بحث او قلاییه. البته اینو نشون میدم عقل و او هر دو صدایی میکنن. لحاظ میل اقل و او ما اصولاً از قانونی خود اعتباض خود حجیت، خود امکسان، خود تمتی و سقوط همه رو اقلالی می دونیم. اینا بیشتر اصلا دنبال احکام عقیقی. پیش ما واضح نیست. این احکام اقلالیست. ما طبق باعده آمنه در اینجا شما از دردان بگیم خدمتون. اون چی که در این مسئله حکم میکنیم حکم اقلالیست. البته ما این رو قبول داریم. من اعتباض خودم ممکن موchildren در بعضی از موارد بعضی چیزهایی که ما میگیم جدا از احکام اوغاله فرض می کنه چون در نظر میگیرن مثلا قدر متقن ما فکر میکنه واسه میوم اوغاله میشرم که قدر متقن ظاهرا که تفکولات اوغاله خود خدای جدا خوابیده یا مثلا اگر شکر کردن اصل اولی دین حساب میکنن شمول و تکلیف شمول و تکلیف نیا خصوصیات رو خودشون ملاحظه میکنن در حکم اغلایی مجموعی که در حالات شک هم کارگذاره این اعتباده بره اینه لذا باید خوب این حکم اغلایی در اینجا تحلیل بشیم آیا ما در این مسئله روایتی نصفی چیزی داری؟ نه روایت الان که ذهن من نیست ما تو مقام و سبوت تحریف داریم در زیاده خوندیم ارز کردیم مثلا معلوم مجلسی گفت در سبوت تحریف باید به اینه مشخص باشی نه باشه ما تو مانحفی نداریم تو مانحفی روایتی باشی که من احتیاط میکنم و با این که تمرکون داره این هم داریم ما تو ادهی از روایات یا تبدیر به احتیاط داریم که خود این مره بخار بودن یا یک چیزی که مرادف بابونه این داریم این خوب در قصر یه اطلاعات احتیاط هم داریم مثل افوک دینو فهدت بدین اونا که رفت توی مناحفی ندن اما یه جاهایی تو خود و غف خود... احتیاط هست مثلا بلد. در اونجا که بازنی در اده ارمی بنده ایمان بود این یه اوالا که انترخونه بله خواهد سطل دینه, دینه. یه بخشی بوده من کنانه از کردن چون جمعه بین اختیاری در زواج نمیشه این بعد خب مصطلح های اطلاق شده در نک یعنی این چیز دو تا خواهر میخوان بخره ادین می گفتن میگه هم مثل ازدواج نمیشه فقهای دیگه برای این بود که شما تو ما هم باشه جمع بین اونها در جمع نمیشه اما در جمع بین اونها در در وقتی نمیشه اما در ملک میشه یه چند مورد هست اینطوری یعنیش اینطوری یعنی اثر ظاهری یک آیه مبارکه جواز یه جدیه خیلی خیالی پنن عدن جواز ما دو مورد یا سه مورد من تو ربارد استخرایستم تو بحث نکاح متحرشم از امیر معاملین سوال کردند: حضرت فرمودند: احلت ها آیه و حرمت ها آیه و امه منزده و و اهلی امه ها این همون احتیال می شدید که با بیگیم احلت ها آیه و حرمت ها آیه وعنه منزده ها نفسی و اهلی انها دقیق پس ما یه موارد افتیاد در روایات داریم اما ظاهر اونها در جاییست که حکم معین نیست یعنی است که کاملا گیره بسید اما مثلا روایاتی داشته باشید که من می تونم بیانه همه می کنم بگه نه تو اختیار بکن مثلا یا さん میگه من میشم به خطا مراجعه کنم میگه نه نیاز اینو نگید ما توی واریات اینو نداره این یک مطلب مطلب دیگری که در این جا هست این مسئله گاهی به لحاظ خودش بررسی میشه گاهی به لحاظ یک لوازم دیگرش بررسی میشه که در خلال مسئله خواهد. ان شاء الله لوازم شاید لوکسمی در لوز در بحث عرض بکنیم ما اصطلاحاً یک قصد امر داریم و اون بحث در همون بحث معروف که عبادات و انسان باید به قصد امر اونها بیانه من توضیحات کافی رو طابقاً ارز کردم بس از, از ادهی از ادهی سنت نهر شده بعضی از اعمال که تکلیف شرعی به خورده معقولت معنا نیستن اونا گفته که معقولت و معنا نیستن قصد قربت غربت میکن. مثلا گفته می‌کنم وصف است معقولات معنا و صورت‌های وجود خالص رو بگم. اما خود معقولات معنی نمی‌سن. اذن بخواب بزنه، سر بزنه. لذا اون گفته تمام تعبدیه وجودی تعبدی نیست. خوب درک کنید صفر دکتر دفت رو یک چیزهای معقوله، معناش واضحه. اون که واضحه که واضحه می‌گم. اون که واضح نیست، مثلا شما بگن که این راست خند این معناش معلوم نیست. این میگه عبادت. عبادت. در این اصطلاح هر چیزی که معناش واضح نیست یعنی فلسفه عقلایی بود و با روشن نیست این یه عبادت. اگر روشن مثلا فقط خیلی واضحه آدم بدنش نمی‌شه. وضو دست و پا نمی‌شوه، موها مثلا پاک مثلا اینکه چیزی تمیز می‌کنه. معص می‌کنه با این معقولات المعنوی، تعمو معقولات المعنوی تعب... نیست. اون یه روه، نیست، یه شرودی. عبادت به آه، به این تعبیره بود. از که تولهمون نداره. دقیق رو ما از دیگری باشه حالا اون بحث این که اون نقطی عبادیت چیه؟ بحث این بحث خود دقیق رو خونی. بحث عبادیت در این که اجمالت ما در شریعت مقدسه اعمالی داریم که اینا اعبادیست و قصد عم در اونا هست ما من توضیحا هست درم کلارم داری ورز مثال رو تکرار می کنم. در باب اعتبار قصد عم سه ا به اینه علما مجموعه علما ما هم دارن یکی این که حقیقت قصد, قصد قربت الالله هست. و اگر گفتیم من اینه انجام میدم برای امر امرشاره اگه قصد امرم کردم چون قربت هست. چون امر امرشاره قربت هست. و هر نحوه قصدی که باشه برمیگره به قربت هر نحوهی که باشه مثلا بگه من نماز رو کنم برای فرار از آتش اینه قربت اونالله برگشتش موجود. من نواز میخوام برای دخولی جنبه این برگیه چیز قربتن الله پس تمام انهای قصد برگرده به قربتن یه بچی اینی ای هست ای که نه تمام انهای قصدن به قصد عم. چون عمر کرده خدا اگر به قصد فرار از جهنم چون خدا را امکرده من با عمر خدا را انجام بدهم فرار از جهنم برد. هم چون عمر کرده همه برگرده به قصد عمر که خوده بنده اقیده یه احتمال ثبان هست که نه هر کنون فرم میکنه قصد هم یه چیزه قصد قربت یه چیزه فراره کنن ناره یه چیزه دو خوله روشن شد در ما به قصد قربت حالا چه آسال داره بعد این میخواهم اینجا که توی توی بحث قربت و اینها هست توی اصول هم داره یک نقطه فرمی این میشه که اگر ما همه رو به قصد عمر برگردو بعضی آمدن گفتن قصد ام نمیشه تو خود امر رو عخص بشه چون این امر این قصد ام میشه به نماز با قصد ام رو این به بعد از میاد قصد ام او شبه معروب لذا آمدن گفتن ما اصلا قصد, قصد, قصد نماز قربت میکنم قصد قربت نمیشه اصلا نماز به قربت ایلالله بخون نماز به خاطر از آتش بخن. بخن. بس این بحث قص از اون بحث معروفی که اون مبتنی است که آنها قصد برگرده به قصد امر در اونجا هم سه تا معنی هست در قصد امر آیا میشونی گفت این تو میشونی می یه جوا علیه که سلا به مرکل از سلا و فران و قصد خود امین سلا که مرکل از رکوع و سجود و قصد خود امین سه تا رأی هست. رعی اول توی عمر نمیشه اما تو قوت میشه رای دوم هیچ کدو نمیشه نه تو عمر نمیشه نه تو قوت چون همه برمیگرده به بر عمر اما به عمر دوم میشه به عمر اول نمیشه مثلا این طور نماز میخون نماز میگه کلام بعد بگی این نماز هم به قصد عمر خود نماز بخون این رعی محوم نایم رعی اول به هیچ وجه نمیشه میرا بچر نারে کنه نه با یک ام نه با دو عم. نه قصد نه قصد دو هیچ خوده نمیشه دیغای چه کوره دوم قصد امر میشه لکن با امر دوم این ورای معلوم نایم رای سوم قصد امر میشه لکن این دیگه در امر دوم با امر اول نمیشه رای سوم خود قصد امر میشه با امر اول اجواز بر امر دوم نداره این ورای که خود این هرگی رو بوده. پس روشنشون در قصده هم در اون بحث اصولی حالا اون بحث اصولیشون بحث همونتون مثلا اون یه توضیح میدن یه بحثی بوده از هم در فیخ بوده هم اصول سنیان دارن مال ما هم نیست مثلا اگه شک کردیم که آیا مثلا رد سلام واجب تعبدیست یا نه چون دارید فروضی دو مثل آقا احسان انا سلام تیارید شفت بکنی که رد سلام تعبودی سن معروف مشهور مشکول بین اصولی ها قبلا سنی و شیعه اصالاتو برای جاره میشی آیا قصد و برد معتبر یا نه اصالاتو برای جاره میشی نکی جزن تعبودی تواصلی میشی این مشکول صاحب که پایی نگه اصالاتو برای جاره نمیشی اصالاتو که سقا این نقطی بس اوجه اینه چرا چون ایشون یه اساس برادر جایی جه ایم چیه که میشه که روش امر رو بگیره خود قصد امر به تعلق نمیگیره نه در امر گفتن نه متعدد نه قصد آن نه قصد خوددار نه قصد فرار من نار نه قصد دخول جده، هیچ هیچکدوم نمییشه اصلا امکان نداره ایشون میگه امکان نداره ولزا که برای تصور ایشان احتیاط وارد کرد یعنی رد سلام میشه تعفدی قصد قربت بکنه آقای خویی در نتیجه مطالقه با مشهور و قضمانست. میگه اگه شک کردیم که قصد خربه در شما کداری نه اصال به برای جده میشه چون اون امر میشه قصد امر اخت میشه در مطالقه حتی در امر واده حتی خود قصد امر فضل هم قصد خربه و قصد فراد مندار خود قصد امر هم میشه اگه شک کردیم در اونجا برای اجاده میشه این نفتر رو از کردن چون در بعض از مواقع ما نحنفی به درم میخورد پس یک بحثی که در اینجا هست آیا در قصد عمر میشه در متعلق اخت بشه یا نه این قصد عمر بود فردا توضیح چوزیح بیشتر یک قصد وجه هم دارن یک قصد تمیز هم دارن. بعضی هم گفتن قصد وجه تمیز یکیه درستی گفتن نه دست وجه به کل عمل میخوره مثلا نماز واجبه قصد تمیز به اجزاق میخوره مثلا من ای که واجبه میکرم قنونتی که مستحبه فرق داریم مثلا یه میگه نماز زهر واجب نافله نماز واجبه و مستحب یه دفعه خود اجزاق میگه اگه به کل بخوره به میشه، به اجزاق بخوره تمید لکن این از ممنون مستقر ما بجانده میفهم دارد لیکن اونی که انسان از کلمات مثل علامه و دیگران در میاد چی دیگری وج یعنی همون قاعده لطفه دیگه من نماز میخونم چون خدا لطف کرده به قاعده هم وقتی که متکلمین و معتظره برم در سر تکلیف در این که افعال الله و تکالیف الادی باید ل باشه للوجه امر الله به پس به قاعده لطف چون جهن؟ ها جهن و هم قصد تمیز اینکه که واجب یا مستحب پس در سرق بین قصد واجب تمیز هم سه رعی شد یکی باشن قصد واجب کل عمل بخوره تمیز به اجزاق بخوره قصد واجب بخوره به وجه عمل به وجه جرد قاعده به قاعده لطفه قصد تمیز بخوره که حالا به قاعده لطفه کرد، نافله صبح مستحب این نماد مستحبه اون یکی واجبه پس سه تا ما در اینجا روشن رو شد و اون بحثه که گفتی از باید در اینجا کمتر میده حالا آنس تصور کردن که اگه در قصد هم اما اشکال بکنیم آیا قصد وزش قابل احض هست مثل قصد هم ریانه